السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الهجت ابن الحسن القائم قال الحسين عليه السلام صبرا بن الكرام فما الموت اللاغن ترى تا بكم آن البؤس و الزرّا إلى الجنان الواسع والنعيم النعيم الدائمة، فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وما خبلا أداءكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن وأذق. إن أبي حدثني أن رسول الله أن الدنيا سجن المؤمن و الكافر، و الموت جِسرها أولاء جنانهم، و جِسرها أولاء جهيمهم ما كذبتوا ولا كذبت. خب، انایت داشتید که این بحث با توجه به فرموده ابو عبدالله الحسین عليه السلام در صبح روز. آشورا برای جمعی بسیار مشخص و معین و ممتاز و برجسته که به تعبیر خود مولا هم کرامند و هم بنل کرام راهی را جهت تعالیشون مطرح می کند که اون مسئله صبر است با توجه به بحث هایی که در چند شب گذشته داشتیم به این نتیجه می توانیم تا کنون برسیم و برای ادامه از این نتیجه استفاده کنیم که یکی از مهمترین و موثرترین عاملی که در فرهنگ دینی ما برای تعالی و رشد واقعی لازم و مؤثر است صبر است با توجه به معنای دقیقی که دارد هرچه انسان بخواهد به درجات بالاتری نائل شود لازمش این است که قدرت سبرش را بیشتر کند و اگر کسی طالب تعالی در مسیر الهی است بدون استقامت و صبر ممکن نیست روایتی است از یعنی حدیث است که امام عليه السلام فرمودن خداوند به جناب داوود پیغمبر وحی کرد اوحلا تعالا الی داود علیه السلام تخلق به اخلاقی و این من اخلاقی اینی انس سبور اینو دقت بفرمایید یکی از عزیزانی که در بحث‌های ها شرکت داشتم نمیدونم اینجا تش دارن یا نه چند روز قبل من صبح این بحث رو اشاره کردم که فرمودن تخلقوا به اخلاق الله سوالی ایشون داشتن با توجه به اون سوال اینجا مربوط به پاسخ ایشون هم باز از این دید می شود خدا به حضرت داوود وحی فرستاد خلق مرا برای خودت ایجاد کن اگر تخلقو به اخلاق الله است که پیغمبر به ما فرموده در این حدیش قدسی طبق بیان امام علیه السلام خداوند به حضرت داوود وحی میکند که تخلق به اخلاقی البته اول دقت بفرمایی این تخلقو به اخلاق الله یا تخلق به اخلاقی نه یعنی نعوذ به ما خدا شویم خدا هم مثل ما خلق و خوی و منشه به معنی خلقیات انسانی دارد نه در اخلاق که برای ما متره است چیست حالات و رفتار و منش و خوی و صفاتی که ما پیدا میکنیم، گاهی پسندیده درست ارزنده است میگن خوی نیکو صفات پسندیده اخلاق صحیح و حسنه گاهی زشت و ناپسند و نارواست میگویند خوی ناپسند اخلاق زمیمه صفات غیر پسندیده. اگر به ریشه لغوی خلق در کتب لغت مراجعه کنید میفرماید خلق در اون هیئت راسخه در نفس است که مصدر افعال انسانی است هیئت راسخه در نفس که مصدر افعال انسانی است یعنی کارهایی که ما انجام میدهیم این کارها که بیرونی است ظاهری است شما مثلا حرکت دست بنده را میبینید، ممکنه به دو شکل مختلف صورت بگیرد گاهی این حرکت دست در راستای دستگیری از ضعف و کمک به افراد به کار بیفتد گاهی خدایی نکرده در راستای زدن تو سر یک بیگناه و عذیت و آزار در حق یک بندگان خدا این حرکت مختلف که از این عذر صادر می شود یا زبان به گونه ای حرف می زنم می نیش دارد دیبت است تومت است افتراس عذیت به بندگان خداست یا سخنی میگویم است نوازش محبت موعظه و ارشاد و هدایته علت تفاوت این رفتار بیرونی من که در گفتارم چه حرکت دستم که تمام اعمال روزمره من اون حیعت راسخه نفسانی من است یعنی در نفسم در دنیای وجودم حیعت راسخه چه رسوخ کرده چه ریشه دوانیده که بر اساس اون ریشه این ساقه و این شاخه پیدا می شود که حالا همین امشب ان الله به این بحث یه مقداری خواهم پرداخت با توجه به گفته برخی از بزرگان این هیئت راسخه رو میگن خلقه این عمل بیرونی رو میگن عمل رفتار کردار این رفتار و کردار از آن خوی بر این خوی است ایجادیست به وسیله ما یا جبری ذاتیست که در وجود ما قرار داده شده است اکتصابیه ما باید در زمین کسب این خلق و خوی زحمت بکشیم کار کنیم فعالیت کنیم تا اون حالتی که در درون ما بناس ایجاد شود که باعث افعال گوناگون بیرونی ما گردد اون حالت صحیح و درست باشه در قرر الحکم از مولا امیر المؤمنین علیه و السلام و این حدیث نقل شده است که حسن الخلق للبدن و حسن الخلق للنفس حسن خلقه مربوط به ظاهر شماست یکی ظاهرش زیباتر ارزنده تر ارزنده به معنی ظاهری قیافش یه مقدار قشنگتر و زیباتره این بدنش زیباتره این حسن خلق است که در خلقت و آفرینش از نظر ساختمان وجودی نسبت به برخی دیگر یک ویژگی پیدا کرده است اما حسن الخلق غل نفس حسن خلق مربوط به نفس است مربوط به بدن نیست به جان دشمن به غیر از تن نداری تن کردی رها دشمن نداری همین ما و منی خسم که خسمی غیر از غیر از ما و من نداری بزن بال و پری بشکن غفص را مگر اندیشه گلشن نداری این غفص و این مرغ در غفصی که اندیشه گلشن داشته باشد هجاب چهره جان می شود غبار تنم خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم یا حالا با مسامهه با اون معانی مختلفی که راجب این شعر دارند که بحث داره مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی غفصی ساختن از بدنم بدنم نفسم جسمم روحم تنم جانم یک زیبایی برای تن و جسم و بدن ما مطرح می شود که مولا اون را حسن خلق می فرماید حسن الخلق للبدن یک زیبایی ارزش قشنگی برای نفس و روح ما مطرح می شود که مولا اون را خلق معرفی می فرماید حسن الخلق لنفس این نفسی را که خدا به تک تک ما داده است قدر ارزنده است که به او قسم خورده و نفس و ما سواها فعل فجورها ها و تقواها قد افلح من زكاها و قد خواب من دفساها یا طبق حدیث کل و مولود نیولد و الفطره اصل نفس در همه آلیشده ولی چگونگی حیعتهای راسخه در نفس دست من و شماست چه کار میکنیم که این نفس الهی این سرمایه خدادادی که در خداوند به من و شما داده است حالت راسخه در او نیکی ها ارزش ها توجه به خوبی ها یا بدی هاست بالاترین خوبی ها که بخواست خدا در این عالم به ما معرفی کند صفات پروردگار است دیگه اگر هر خوبی را شما بحث کنید علم خوب است علم مطلق صفت الهیه عالم است به معنی علم مطلق دارد قدرت خوب است قادر است علم قدرت, قدرت خدا مطلق است کریم است رحیم است بخش و همه صفات پروردگار به عنوان صفات ارزنده است شما میخوایید در نفستون خلق حیعت راسقی ایجاد کنید تخلق و الله یعنی خوبی هایی که خدا دارد و در این عالم به شما شناسنده به اندازه توان در خودت ایجاد کن این معنی تخلق و اخلاق الله نه یعنی خدا بشون عوض به این که امکانش نیست بحثش غلطه شما خدا علم را ستوده است علیستا علمون یعلمون واللزین لا یعلمون علم ستوده. خودش عالم مطلقه یکی استفاد پروردگار یا عالم به اندازهی که میتونی عالم بشو کرام را خدا ستوده است یا نه خودش کریمه به که میتونی در خودت کرم ایجاز کن اما حالا این معلوم شد که تخلق و اخلاق الله خدا به حضرت داوود پیغمبر که این رو توجه داشته باشید یه عبارتی چند شب قبل گفتم الان احتیاج دارم تکرار کنم که حضرت داوود به خدا عرض کرد خدایا برخی از انبیا نسبت به برقی دیگر بالاترند تلک رسول فضلنا بعضهم علا بعض من در بارگاه و حریم تو بخوام تعالی پیدا کنم و درجاتم بالا بره چه بکنم ندا اومد یا داوود خودت رو برای ابتلا و امتحان آماده کن و میزان صبرت را در این امتحان نشون بده و حضرت داوود پیغمبر میفرماید خودت را برای امتحان آماده کن و میزان صبرت رو در این امتحان نشون بده اینو داشته باشی حالا که داره این حدیث بطسی کتاب محجت البیزا جلد هفتم سطحه سد هفت روایت رو اینجا دارم نقل میکنم. با بحثی که ایشون کرده اتفاقا بسیارم جالبه که بعضی نقطه هاشو اشاره خواهم کرد جلد هفت محجت البیزا صفحه سد او حالا تعالی الی داود تخلق به اخلاقی حالا تخلقو و به اخلاق الله روشن شد در میان تمام این ویژگی ها صفات برجسته‌ی پروردگار خدا به داوود انگوش گذشته رو یکی از اینها و ان من اخلاقی انی انا صبور من صبورم میخوای این صفت ارزنده رو پیدا کنی پس باید چی باشی صابر باشی صبور باشی صبر خدا که دیگه معلومه تبریک که پروردگار عالم داره به عنوان یک ویژگی از ویژگی پروردگار شما میخواییم به سوی من بیاییم دیگه غربه الله پیدا کنید به سوی من و غربه به جانب من میخوایید پیدا کنید یعنی به صفات من میخوایید نزدیک بشید برای نزدیک شدن به صفات من اونی را که به یک پیغمبر برجست مثل داوود رحمی کند سبره اول بهش میگه میخوای بیای بالا برای امتحان خودتو آماده کن حالا که آماده شدی تخلق به اخلاقی و ان من اخلاقی انا صبور من سبورم چقدر میتونی سبور باشی صفحه صد هم این همین کتاب از حضرت مسیح علیه السلام مطلبی را نقل میکند که این مضمون به صورت های عالی تر در منابع روایی ماست که از نهج البلاغه همین مضمون رو میخونم خب حضرت عیسی مسیح پیغمبر الهی کانال وحی که کلام نورون واحد به اقتضای گرفتن از من به وحی اما تلکر رسول فضل نابع هم الا بعضم توجه داریم کلام کلامی است که از کانال زهره انکم لا تدرکون ما تحبون الا به صبركم الا ما تکرهون چقدی حدیثم خشنگه اینکم لا حالا تدرکون ما تحبون الا به صبركم الا شما نمیتونید برسید دریابید اون چرا که دوست میدارید الا به صبركم الا ما تکرهون مگر در اثر صبری که نسبت به اون که نمیپسندید دارید اینجا باید یه توضیح نسبت به این حب بدم ما حب صحیح داریم و حب غلط یه چیزایی رو نباید دوست داشته باشیم غلطه اصا ان توه و هوا شر لكم یه چیزایی رو می دوست دارن بده یه چیزایی رو باید دوست بداریم اصا ان تک و هوا خیر لکم اون دوست داشتن ارزنده که باید دوست بدارید مثلا در اسلام دستور میدن قل لا اسالکم علیه اجرن الا المودت فلغربا پس این رو داشته باشید این کنتم تحبون الله اینو حب الهی رو اینجا به عنوان یک صفت برزنده مطرح میکنه که میگه راست میگی. واقعا خدا رو دوست داری فتبعونی پس باید تابع بشی ان المؤمن اشد حب لله که قرآن میگه مؤمن اونی است که اشد دو حبش برای خدا باشد اونی را که دوست میداری یعنی در مسیر تکامل عرضش های واقعی حب مثبت میخوای به او برسی نمی شود الا به صبر کم علامات تکرهون مگر این که بخواهی صبر کنی نسبت به آنچه که برات ناگواره حالا این صبر در ناگواری در دو شعنی که شبهای گذشته بحث کردم یک شعن هوای نفس میخواد بهش برسه میخوای جلو و هوای نفس رو بگیری کمی دشواره اینجا باید عادت کنی که جلوشو بگیری بتونی واسی. شعن دیگر هوای نفس نمیخواد به او نزدیک بشه اما عقل و شر میگه باید نزدیک بشی نزدیک شدن دشواری و یه مقدار سختی داره باید صبر نسبت به این مطلب داشته باشید اصول کافی جلد دو صفحه هشتاد و حدیث هفت همون بابی که این چند شب حدیث شش و حدیث دوازده و حدیث شنده و چهارده رو براتون خوندم چند تا روایت داشت حالا حدیث شماره هفت از امام باگر علیه السلام با این فرموده حضرت مسیح با اون حدیث قدسی الهی به حضرت داوود اینا رو الان کنار هم پکر تا یه مقداری آن معنایی که تو ذهنمه بتونم از دید منابع وحی اول بگم چیه به اندازه وقتمون یک کلمه‌طلب رو باز کنیم تحلیل کنیم و ان جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام الجنت محفوفه بالمکاره و داره فمن صبر المكار ف دنیا دخل الجنه و جهنم محفوفتون به و فمن اعتا نفسه لذتها و شهوتها دخلن نار حالا حضرت مسیح چی فرمود؟ فرمود نمیتونید به اون درجات بلند برسی مگر اموری را که شما اکراه دارید نسبت به اون امور ناپسند صبر پیشه کنید امام باغر چی توضیح میدن الجنت محفوفه دل مکارحه و صبر بهشت میخوای البته تو پرانتز بگم بهشت هر کس به اندازه فهم اون کس است من الله اکبر زالکه هو الفوز العظیم این بهشتی که صبح ها ما و اون مقام حجوب نوری را شکافتن وارد عالم برتر از هجاب نوری شدند که بحثایی داریم روایاتی اونایی که میشنوند در جریانن که بهشت کسی که اون معرفت رو پیدا کرد کاخ و باغ و راغ و اینها برای شیهی چه حالا به هر حال جنت به هر سطحی که هر کسی در نظر داره این جنت محفوفتون مکاره و صبر پوشیده شده است یعنی اینجوری بگم من گیرم مجبورم با این مثالا بگم آقا یک درری، یک جواهری یک میوهی، یک خردنی، یک دارویی، یه چیز ارزنده پیچیده شده در لای چندین دستمال کاغذی و چندین مثلا پویشه شو لفافهای گوناگون دورش کشیدید میگه اونه میخوای با این رو هی باز هی برداری، هی باز دیو تا برسی داخل اون بهش پوشیده شده اونایی که میخوای کنار بزنی بزنی تابری اون داخل چیه اینایی که دوریشه گرفته یه چیزاییه که مقداری نسبت به حالت اولیه ی انسان انسان نسبت به اون اکراه داره دشواری داره مشکلی داره سختی داره تحمل میخواد صبر لازم داره مثلا فرض بفرمایید نسبت به واجبات در حد کسی که به این ساعت میتونه صبور باشه که مقام صابرین رو سه پله رو اهل پنزه کرده از پله یک تا پله سه برسیم که من اشاره کنم یکی مثلا مقام درجه تائبینه صبر طائبین این که درجه شکایت نمیکنن صبر زاهدین رضاق مقدر الهی صبر صدیقین اون چه خدا میخواد دوست می و لذت میبرند و ولو رنجه. صبر صدیقین آیات چه می‌خونم حالا از قرآن در میاد حالا به هر درجه‌ای که میخواد صبر کنه من این عنوان کردم تا بد مطرح کنم اینجا دقت بفرمایید میگه این بهشت پوشیده شده شما یک صبر در حد واجبات رو باید این لفافه ها رو می‌خوای کنار بزنید دشواری عبادت سختی نماز خوندن سختی مثلا فرض بفرمایید که روزه گرفتن برای کسانی که به اون درجهی که پسندمون چرا جانان پسندن نرسیدند یعنی یه وقت از نظر صبر و استقامت به مقامی رسیده مناجات المحبین امام سجاد در مناجات خمسه اشر خدایا حلاوت عبادتت را به من بچشون یعنی از عبادت لذت ببرم یه وقت نماز رو میخونا. تارک سلات نیست ولی قرغرم تو دلش میکنه آخه خدایا ای صبح رو دیگه واجب نمیکردی ما بتونیم یه مقداری بخوابیم ولی نماز رو میخونه یک زمان انتظار میبره وقت نماز برسه به در باشد در رحمت الهی گشوده شد وقت خاص به من داد حالا در این وقت خاص میخوام به حضور او برم با او حرف بزنم این یه مقداری برای بعضی که به این مقام نرسیدن هنوز قبل از این مرحله کمی اکراه داره این اک شد نسبت به این مطلب حالا برسیم از واجبات بالاتر یکی میخواد نماز شب بخواند، مناجات با پروردگار داشته باشه یک سلسله عبادات خاص مستحبی این چنانی رو انجام بده حالا چون اجمالا فهمیده اینا آثاری داره یک برکات و خیراتی داره دلش میخواد به خاطر رسیدن با اون آثار و برکات شب باشه با خدا راز و نیاز کنه خب یه کمی اکرا داره سخته ولی این سختی رو صبر میکنه صبر در این مرحله اما یه وقت میرسه بالاتر صبر صدیقین میشه به چه معنا؟ اصلا میگه نه این که نماز شب میخونم خدا چیزی به من بده خود این نماز شب خوندم چیزیست که به من داده اگه بتونم بخونم لذا انتظار میبره که اون موقعی از شب بشه تا بتونه با معشوق و محبوبش سخن بگه ولی قبل از این که به این مرد گفتیم با صبر باید اینجا رسید دیگه صبر آملیست که انسان رو به اون درجات بالا میرسانه لذا میفرماید الجنت و محفوفتون و سبر فمن صبر على المكار فه دنیا دخل الجنه اون کسی که در این دنیا قدرت ایستادگی نسبت به این اموری که خیلی خوشش نمیاد داره حالا من مثال های ساده زدم شما مثال ها رو گسترده تر کنید در شعون گوناگون مثلا به عنوان مثال یه نمونه ارزو کنم آقا تکلیف شرعی می شود برای یک فرد در یک شرایط خاصی تکلیف شرعی می شود در یک شرایط خاصی در اوج علظاهر زلت حقارت تن به بسیاری از مشکلات دادن بره پیش کسی صد تا بیگناه رو نجات بده چقدر سخته قدر همین همینجا تو پرانتز بگم این رجز جانانه مولامون ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو دقت بکنید الموت اولا من الركوب الاري الار ولا ار من دخول الناری. اگر بناست ننگ و نکبت و ذلت و پستی و فرومایگی نه نه من مرگو میپذیرم این زندگی رو نمیخوام من اون مرگو برای زندگی ترجمه میدم اما اگر بناست شکلی عمل کنم که در نظر مردم آر و ننگ و ذلت حساب بشه ولی از خدا این رو میپسنده من اینو نپسندم به خاطر اینکه نکنه آر و ننگ تو مردم شکسته میشم نار برای من قرار میگیره ولی آر اولامند دخول ناری من این آرو آر میخوام ولی نارو نمیخوام آری که به نظر مردم آره لذا این مثال ارج می کنم صبر اینجا چقدر مهمه الان بنده در یک شرایطی قرار بگیرم تکلیف شرعی شخص بنده این باشد عنوان یک پرد از ظاهر ذلت و بپذیرم حقارت بپذیرم گردنم و کنم کلی مشکلاتو رو کنم بعضی مسائل رو بپذیرم تا اینکه که بتوانم از این طریق فرض کنید صد بیگناه را نجات بدم بگم نخیر، بنده کنیشدم ما برای خودمون شخصیتی داریم آقا ما دیگه نمیتوانیم اینجوری خودمونو بشکنیم بلا تشبیه بلا تشبیه من که نمیتونم اصلا اینو مقایسه کنم به امام حسین اخرج الال اراغ الله اشعان یراک غزیلا باید بری اراق خدا میخواد کشته بشی سرت بالای نیزه باید قرار بگیره همه ی عزیزانت باید کشته بشن خواهر و زن و بچت باید اسیر بشن نعوذ بالله زبانم بریده بود خدایا دیگه ایمقدارش رو دیگه آخه ای مد... اون آخرین لحظه میگه الاهی رزند رزایی تسلیما لغذایی صبر نسبت به اون چه که با میارهای ظاهری در این دنیا برای ما سخت دشواره داشته باشیم تا بتونیم به اون درجه برسیم و جهنم محفوفتون به لذات و شهوات عزیزان جوانتر دقت بکنید، مسائل شهوانی لذات غریزی اموری که در رابطه با پسی های دنیاویست با اون بعد حیوانی ما سازش بیشتری داره همونطوری که یک حیوان از علف لذت میبره از آب و خوردنی لذت میبره اون بعد غریجی ما از این امور لذت میبره ولی زمانی که بعد روحانی وجود ما بالا میاد حتی به درجه ای میرسد که این لذت رو دیگه لذت نمیداند اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخانی این مثال من زده هم تکرار کنم تشنمه به شدت از اتش رنج میبرم یه لیوان آب در اختیار من گذاشتن الان با نوشیدن این آب لذت میبرم این لذت این نوع شهوته یعنی خوش اومدن شهوت خوش اومدن یه شهوت شهوت خوردنه یه شهوت شهوت مقامه گوبالا منبر داشت از یه پامنبری تعریف میکرد پامنبری میگفت میدونم هرچی میگفتی دروغ بود ولی خوشم میاد بازم بگو شهوته لذت بردن از اینکه تعریفش رو بکنم شهوت از اینکه که تشنم الان این آب رو می نوشم این رو حیوانم داره ما در یک ساعت حیوان در یک ساعت اما حالا در مورد همین انسان اون بعد بالاتر اگر ترقی کند بیاد رو تشنه است به شدت هم میله و آب داره تشنتر کم تحمل تری را می داره بیتابی می کنه چیته تشنم آب گیرم نمیاد و میدونه این یه لیوان آب رو بده دیگه گریش نمیاد میگه بفرماید آقا فعلا شما بنوشید از این که او می لذت میبره این لذت چه نوع لذتیه از یه بد بالاتر لذتی که مال امور پست گرایش به سوی جهنمه و جهنم محبوفتون به لذات و شهوات اون چیزایی که غریزه میخواد اینا در راستای مسائل جهنمیست فمن اعتان نفسه لذتها و شهوتها این لذت و شهوتی رو که هوای نفس خود شاش مطیعتم تو میخوای بهت میدم مثل اینکه یه بچه 4 ساله‌ای زکام به شدت هم داره از سرما رنج میبره فریاد میزنه بستنی میخوام چاشم الان میخوام می بهت میدم فاینه بهش شدی که بیچاره سردی که اونی که عاقل از قبیتر تجربهش بیشتره میگه نه عزیز من نباید بخوای اگر نتوانست استقام کند که نباید بخواهد به قول روانشناسان از جایگزینی استفاده می کند. چیز دیگری رو جای این خواسته میگذاره که مزر او نباشد تا به درجهی برسد که بفهمد چی این عبارت رو دفت کنید تا به درجهی برسد که بفهمد سعادت رشد کمال تعالی ترقی. این نیست که هرچه هوای نفس ما میخواد بدان برسیم بلکه سعادت تعالی و رشد کمال این است که بدانیم چه باید بخواهیم سازه بعد از این که دانستیم چه باید بخواهیم بکوشیم آنی را که باید بخواهیم به با آن برسیم در مرحله اول خود خواستن را درست کنیم را درست کنیم پس اون چرا که هوای نفس میخواهد قدرت ایستادن در مقابل این هوای نفس داریم یا نه به همین جهت صبر برای حیوان مطرح نیست سبر برای فرشتگان مطرح نیست سبر برای انسان مطرح اینو دقت خط بپرمایی یه نکته بسیار ذریف و دقیقه. فکر نمیکنم وقت بیش از این اجازه بده تا اون درجات مختلف صبر رو از قران بحث کنم که احتمالا به فردا شب میفته و یکی از آن نمونه های ث هم وجود مقدس غمر بنی هاشم فضل عب یه علیه سلامات و سلام است که اون ایجالا فرد شب عرض خواهم کرد و نه اینکه علی اکبر سلام الله علی نمونه بارز صبر محبی نیست او همچه صدیقی نیست چرا؟ حالا به اندازهی که بناست تو این روال پیش بریم ارز خواهم کرد اینجا دقت بفرمایید صبر چیه؟ وقتی بعد شهوانی به اقتضای شهوت دوست میداره به اقتضای شهوت بدش میاد یعنی به اختضای اون درجه حیوانی وجود ما مثلا شما وقتی که یه نفر رو وادار میکنید درس به خانه تا زمانی که به اون رشد لازم برای فهم ارزش علم نرسیده، یه وقت فهم ارزش علم و کشف مشهولات و توجه به ارزش های والای علمی رو داره، از خوندن بیدار مندن برای خوندن شامشو دادن کتاب خریدن مطالعه کردن لذت میبره لذت سطح بالا ولی به این درجه نرسیده فعلا در حد شهوات غریضی انسانی گیر افتاده در این حد که هست درس که میخونه یک مقدار رو حساب اجباری که فدر مادر میفرستن رو ترس حضور قیابیست که مدرسه میکنه رو ترس مشروط شدن آخر ترم دانشکده و آبروش رفتنه رو ترس برخی محرومیت های اجتماعی است که اگر یعنی الان جاذبه روحی ارزنده وجود نداره نوعی اکراه نسبت به این داره داره خودشو رو وادار میکنه این امری رو که خیلی الان گرایش به او نداره وادار کنه که بیشته ولی اگر اومد اون سطح بالاتر اون وقت حساب دیگه ای پیدا میکنه چون در انسان این بود شعبانی هست اون بود عقلانی هم هست بعد شهوانی میگه سختم بعد عقلی رو وادار میکنن یعنی اگر ما شاگردارو اینجوری بار بیاریم از کلاس اول ابتدایی و راهنمایی که با جایزه و وعده و خوشش اومدن و ازی حرفا درس یاد بگیره به آخرین سن ممکنم که رسید باز به خاطر جایزه درس بخونه این روش کرده نه اما به جایی برسه که بفهمه سختی ها را باید تحمل کنم تا این ارزش رو به دست بیاورم، یعنی از این مرز رفت بالاتر این برای حیوان مطرح نیست چون حیوان غیر از قوه شهویه قوه دیگری نداره وقتی گرست نشد فقط قوه غریزه غذا خواهی وادارش میکنه غذا بخور نیاز جنسی برای حیوان به اختضای شرایط سالی و پسلی و سنی مطرح شد هیچ معیاری دیگه برای اون مطرح نیست که مسئله صبر کنترل معیار ارزش ها بررسی کنه کما ای که در غذا هم انسان ببینید حیوان ببینید یک انسان الان گرسنه است به شدت میل به غذا داره بیماری قندم داره قضای شیرینم در اختیارشه الان تمایل به این غذای شیرینم داره اگر فقط قوه شهویه باشد دیگه قوه عاقله در کار نباشه قوه شهویه چی میگه خب بخور لذت ببر ولی قوه عاقله بر مبنای عقل و تجربه و علم و آموزش میگه نه ای که دوست داره بخوره نخوردن سخته این صبر دیگه چون عقل داره و شهوت داره عقل جلو شهوت را بگیرد میشه صبر در حیوان صبر معنا نداره چون عقل نداره جلو شهوتو بگیره در فرشته صبر معنا نداره چون شهوت نداره فقط عقله این عین حدیثه ان الله قال علی علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه او ان الله تبارک و تعالی ركب الملائکه عقلا بلا شهوت ورکب البهائم شهوتاً بلا عقل ورکب فی بنی آدم کلتیه ما در انسان هر تاشو قرار داده فمن غلب عقلهو شهوته و هو خیرون من الملائکه ومن غلب شهوته عقلهو و, عقله و شر من البهایم اینجا برای انسانی که فتبارک الله احسن الخالقین وقتی به خدا میگه اینی جا و الون فل عرض خلیفه میخوام خلیفه بیافرینم فرشت میگن نحن و سبه و به و نقدس و لک ما هستیم داریم تقدیس میکنیم تسبیح میگیم خدا میفرماید اینی اعلم و مالا و تعلمون اونی که من میدونم شما نمیدونید و این انسان رو و ولقد خلقنا انسان فی احسن تقویم احسن تقویمیش در چیه؟ و تین و زیشون و چور سینین و آز البلد الامین لقد خلقنا انسان في احسن تقویم سمرددناه اصفل صافلین الا الذين الذين و عملو صالحات فلهم عجرون غیر ممنون فمایو کذبو که بالدين بددین الله و الحاكمين همه برمیگرده به این حرف این موجودی که در این دو جنبه در این دو قسمت میتونه احسن تقویمیش اینه بره بالا و میتونه سقوط کنه و بیچاره بشه عاملی که او را بالا میبرد صبر است صبر است صبر صبر صبرن بن الکرام حالا ارتباطش نمیدونم میرسیم یا نه ما فقط تو کلمه صبرش این چند شبه بحث کردیم فمل موت لاغن چون بحث صبر بعدش رو موت رو مطرح میکنه که از دو دید نطرح میشه اشاره میکنم همه بحث سبر تموم نشده فقط این اشاره رو میکنم رد بشم از دو دید یک مشکل ترین مشکلاتی که در این عالم و مرحله نهاییش مرگه دیگه آقا جان میگیرن مگه بیشتر از اینه خب مرگ برای کسی که در راستای عرضش حرکت میکند چیه؟ گر مرگ رسد چراح راسم. که این راه به توست مرگ اگر مرد گو نزد تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ من از او عمری ستانم جاودان ز من دلغی ستاند رنگ رنگ لذا وقتی که امام حسین علیه السلام کلمه استرجارو به زبان آوردن انا لله و انا علیه راجعون وجود مقدس علی اکبر وجود مقدس قاسم ابن الحسن از هر دو نقل شده امو جان صحبت از مرگ و شهادت و فرمود بله بله هممون کشته میشیم بعد پرسیدن مرگ در نظر شما چگونه است هر دو بزرگواران جواب دادن با اختلاف در مواقع نقل احلام الاصل یعنی چی آقا یعنی چی تعارف شوخی یا چی فهمیدن که به اختزای آن فهم لذا از یک دید مگر چیه؟ حرکت سوی محبوب لذا خود امام در ادامش میفرمایند فمعلموت اعلام تر تعب تعبر بکوم عن البهوس و ذر را الجنان الواسع و الدائمه به خدا قسم میشناسم همین الان افرادی را که جز به خاطر احساس وظیفه تمایل به زندگی ندارن میگن آرزو میکنیم اگر مسئولیت انجام وظیفه نباشه خدا مرگمونو برسونه هر چه زودتر بریم تو عالم بالاتر از این مرحله بگذریم خرمون روز کز این منزل ویران بروم راحت جن طلبم و از جانان بروم این بینش اگه در دنیا ذهن یک انسان ایجاد شد و وقت لذت گذرای چند روزه این عالم پست و میز و مقام و شهوت جنسی و پول و قینا میگه برو این دامبر مرغ دگرنه کنگارا بلند از آشیانه این از یک دید از دید دیگر وقتی میگه حالا مرگ نهایت مشکلاتی رو که شما در این عالم تحمل می کنید به اندازه عمر این عالم دیگه 50 سال شد سال کمتر بیشتر اما توجه داشته باشید که مرگ شما رو می به یه عالمی که الالعبد زنده اید جاویدید و نسیجه صبر و استقامت برای عمر علل عبدی شما سمر بخش است در اونجا و باید براتون مشخص بکنه لذا حالا اینو من اجمالا ارز کنم که دیگه فرصت امشب اجازه نمیده شب علی اکبر سلام الله علیه. علیه هر سال من شب هشتم تو این حسینی خیلی امید دارم چرا؟ چون اکثر کاران خدمتگزاران زحمت که در طول سال در این حسینیه زحمت میکشند که من دست تک تکشون رو میبوسم اکثرشون جوانم بزرگترهایی هم که دستشون رو میبوسم و مدیونشون هستیم حسابشون جدا ولی اکثریتشون جوانم امشبم شب علی اکبر جوانه نه عرض عدب خاصی نسبت به و ما امیدواریم که علی اکبر حسین علیه همه سلام امشب انایت خاصی به این جلسه داشته باشن که از توفیل شما جوانان پاک دامن با خلوص نیت من بهره ای ببرم انشاالله میخوایم عرض ادبی نسبت به وجود مقدس علی اکبر بکنیم ولی یه جنبندی بکنم به اخزای فرصت نتیجه این بحث رو مشخص کنیم تا بعد فرد شب انشاءالله بتونیم این رو پی بگیریم نهج البلاغه کلمات قصار شماره پنج چون در ارتباط با این بحثه از کردم حضرت عیسی وحی الهی به حضرت داوود امام باغر علیه السلام در کافی این کلمه قصار مولا بگم جمع کنم از صبر و صبران صبر را نه تکره و صبر را نه اما صبر صبر نسبت به اونی که سختتونه، اکراه دارید، مشکله، نمیپسندید، چقدر وای میستید. صبر نسبت به اونچی که دوست میدارید الان دلت میخواد ولی به خاطر خدا نباید بخوای، باید جلوش واسی. چون در انسان خواسته حیوانی شهوانی داریم، وقتی حب شهوانی درست شد، اینجا سبر اینه که جلوشو بگیر. یه برداشتی رو یک بزرگی کرده من نقل قول میکنم از اون بزرگ خیلی استفاده کردم وقتی این عبارت رو در نوشتش دیدم انقدر لذت بردم که مدت ها روی این نوشته فکر میکردم و دنبال این مطلب در کتابهای دیگه گشتم ببینم دیگران در این زمینه چی میگن خیلی عالی دقت بفرمایید حیوان فقط غریزه است فقط شهوت و لذا عقل برای حیوان مطرح نیست به همین جهت کشش‌های غریزیش کنترل تکوینی دارد یا نه کشش‌های غریزی کنترل تکوینی داره مثلا اگر تمایلی به یک امری که به اقتضای غریزه داره پیدا می‌کنه اون مقداری که لازمه بقای موجودیتش ارضا شد تموم میشه ولی در انسان امکان افراط در تمایل غریزی تا حدی که خودشو بکشه هست یا نه تو شعون مختلف در عضو میخوام مجبورم ركب سریع بگم غریزه جنسی در حیوانات عقل نیست که کنترل کنه رو نظام خلقت کنترل میشه به اندازه ای که برای بقای نسلو یک سلسله موجودیت این حیوان لازمه کنترل شده فعلیت داره اما چقدر انسانه ها که در اثر افراد در غریزه جنسی خودشونو بیچاره میکنن جامعه را بیچاره میکنن اون وقت اینجا چون در حیوان کنترل جبری است صبر خود حیوان برای کنترل معنا نداره خدا به انسان عاملی داده به نام عقل در درون از بیرون پیغمبر و امام اینا رو به کمک بگیر کنترل کن این میشه صبر کسی که اینو نداشت انسان نیست حیوان است این پایینترین ترین درجه صبره تا بیاد برسه به درجات بالای صبر. پس اگر روز آشورا وجود مقدس امام حسین من به آیات قرآن دیگه نرسیدم امشب وقت جازه نمیده وقتی که وجود مقدس امام حسین علیه السلام در روز آشورا به اون بر جستگان میفرماید صبرن بن الكرام. یعنی شما که اون مراحل گذارندید تا اینجا استادید اما اینجا به بعدشم بازم صبر خودش رو میخواده همونطوری که علم شما به هر سطحی از علم برسید میتونید بگید تموم شد یا تازه اتش نسبت به مرحله بالاترش رو پیدا میکنید و از که او کردند کردن زحماتی کشیدن اساتید قوی اونچنانی رو دیدن مراحلی رو پشت سر گذاشتن میرسن میگن تازه اتش و لعه ما زیادتر شده یک اهل معناها و برجستگانی رو شناسایی بکنیم بریم یه مقدار سطوه بالترش رو بفهمیم صبر هم اینطوره یه مراحل و پشتر گذاشتیم اومدیم جلو پشتر گذاشتیم اومدیم جلو وقت به یه سطوهی میرسیم که مثل بن الکرام صبر نسبت به اونها مطره همیشه خودشون رو بکشونن بالاتر و حالا یکی از این بن الکرام وجود مقدس علی اکبر علیه و السلام و از نظر تاریخی برخی معتقدن بیست و هشت سالشون بوده زن و بچه هم داشتن از امام سجادم بزرگتر بودن علی اکبر گفتنم به این جهته امام حسین علیه السلام اون قدر باباشو دوست داشت که بچه هاشو همشو اسمشونو علی گذشته علی اکبر علی اوسد علی ازخر که بعضی ها این بحث میکنن از بزرگان علمای شیعه که امام سجاد علیه السلام که علی ابن الحسینم حضرت علی اکبر که در کربلا شهید شد میگن علی اکبر و جناب ششماه علی اصخر امام سجاد میگن علی اوسر برخی استدلال میکنن که ایشون 28 سالشون بوده ازدواج هم و چم داشتن در کربلا شهید شد. برخی میگن نه ایشون 18 سالشون بوده از امام سجاد کوچکتر بودن و اگر علی اکبر و علی اصغر میگن بین دو پسر شهید امام حسین علی اکبر شهید بزرگتر علی اصغر اون علی که شهید کوچیکتره حالا من خیلی کار به جنبه های تاریخی این قضیه ندارم 18 سالشون باشه یا 28 سال من این رزئه کاری هاش الان کاری ندارم به هر حال علی اکبر شخصی است که امام حسین علیه السلام در مورد ایشون چی میفرمایند اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله خلقنش خیلی حالا بله به هر حال پسر امام حسین از نسل فاطمه زهراست به پیغمبر شباهت ژنی و ارثی و اینا حالا یه بحثی خلغن به رسول الله کی بگه اینو؟ امام حسین علیه السلام تمام مقاتل اعم از شیعه و سنی بلا استثنان رو نقل کردن یعنی از است که در روز آشورا امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر علیه السلام داشت به سوی میدان میرفت دست به آسمان بلند کرد محاسن شریفش رو به دست گرفت آیه ای از قرآن رو تلاوت سرمودن بعد به خدا عرض کردن شاهد باش به میدان میرود برای مبارزه کسی که اشبه الناس خلقا و, و خلقا به رسول اللهس حالا خلقا گوینده امام حسین امام مسومه. و ما که وا ان الهوا علم او و الا وحی و نیوها راجبه پیغمبر گفته شده پیغمبر و اهل بیت كلهم نورن واحدان امام حسین بی حساب سخن نمیگه خلقن به رسول الله خدای جهان راجب خلق رسول میگه این نکه خلق نظیم تخلقو به اخلاق الله تخلق به اخلاقی این که بحث داشتیم اول بحثمون صبر اون خلق را ایجاد میکند بالاترین خلق خلق عظیم مال رسول الله هست لذا انك على خلق عظیم برای این خلق عظیمی که پیغمبر پیدا کنه چقدر صبر کرده که یه نمونهش ولو کنتا فظا غليظ القلب لن فظ من قولك وخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين و هكذا اینا رو متوجه بشیم آیات خلق پیغمبر معلوم بشه اشبه الناس ناس خلقن به رسول الله پس معلومه که علی اکبر علیه السلام صبرش چه صبریه به چه مقامی رسیده لذا در روز آشورا اول تمام اصحاب دست به دست هم دادن گفتند تا یک نفر از ما زنده است اجازه نمیدیم از نسل پیغمبر و آل علی نفر شهید بشه تا این درس اینجا یاد بگیریم احترام آل رسول احترام خاندان پیغمبر احترام وابستگان به ارزش‌های والا ببینید اصحاب کربلا را تمام این ریزکاری‌ها رو رعایت می‌کردند حالا مثلا فرض بفرمایید که اول از خانواده ما شهید بشه بعد اون‌ها شهید بشن بالاخره شهید شدن ولی می‌خواد همه امور رو را نه چه ما زنده ایم نمیداریم کسی دستش به خاندان رسالت برسه لذا تمام اصحاب شهید شدند بعد از اصحاب وقتی نوبت به خود بنی هاشم و آل رسول رسید اول کسی که از خانواده پیغمبر از آل علی شهید شد علی اکبر علیه السلام در اینجام دوتا یا چند تا نکته من به اندازه فهمم یک این خانواده خانواده ای هستند تقاضا دارم این نکته ها رو دقت کنید تا به روزه برسم این خانواده خانواده ای هستند که طبق فرموده قرآن لم ما مالا تفعلون چرا میگید عمل نمیکنید کنید اگه گفتن نماز بیشتر از همه خودشون خوندن اگر گفتن روزه جلوتر از همه خودشون گرفتن اگر گفتن ایثار بخشش بیشتر از همه خودشون اهل ایثار بودند تا قبل از مرحله شهادت علی اکبر علیه السلام تکلیف امت بود که نگذارد کدوم امت؟ بن الکرام اصحاب ابی عبدالله لذا اونا وزیفه شونه تا ما اصلیم باید سفر بلای آل رسول باشیم اونا نذاشتن حالا اونا رفتن همه به برادر زاده است حسر اموه برادره از همه اینها نزدیکتر به عبی عبدالله امام حسین علیه السلامه چرا خود امام حسین اول نرفتند؟ چون وظیفه اون تن از آل رسول و آل علی بنی هاشم که روز آشورا شهید شدن وظیفه اونها هم حفظ جانه امامشونه به همین جهت هیچیک از اونها هم نگذاشتن تا خودشون هستن امام شهید بشه از این جهت حالا که نوبت به این برجستگان رسیده امام حسین از خودش شروع کرد خودش شخصا تکلیف بقیه اینه که جان امام رو حفظ کنند لذا اونها به از نظر تکلیف دچار مشکل میشن منعای خودش چه کسی رو علیه اکبر را جانش رو به چه معنی؟ حالا دقت بفرمایید از نظر خلق میگه اشبه و ناس خلقن به رسول الله خلقا به رسول الله، داره که پیام امام حسین میفرمودن، تو خانواده ما رسم بر این بود، هر وقت دلمون برای جدمون رسول خدا تنگ میشد، علی اکبر رو نگاه میکردی. گاهی وقتا می گفتیم علی جان راه برو، حرکت کن. نگاه به چهره تو بکنیم ما رو بیاد را رفتن رسول خدا حرف بزن ما رو بیاد حرف زدن جدم رسول خدا میندازه. یک همچو وجودی که امام حسین به این شدت علاقه داره دوست داره وابسته است و این شخصیت هم در حد قرار گرفته پارسال شب هشتم گفتم امشبم هم شبه شعب نداره ممکنه بعضیا باشن این عرض بنده رو نشنیده باشن این عرض کنم مقام علی اکبر علیه السلام رو هم توجه داشته باشید از من تو پرانتز این قسمت رو میخوام بگم اشاره بکنم به بحث های دیگه از روی منابع شرعی ما قابل اثبات است که اگر مسئله امام سجاد علیه السلام نبود حضرت علی اکبر علیه السلام حتی لیاقت امام شدن رو داشتن اینا رو ما تو منابع داریم حالا من بحثی روش نمی کنم دقت بفرمایید. تقریبا شبیه قضیه جناب اسماعیل و امام کازم علیه ما سلام که حساب خاص خودش رو داره حالا یک همچه شخصیتی که بخواید ارزشش رو اومده رفته میدون جنگ نمایانی کرده اتش بر او غلبه کرده برگشته اومده تو خیام پدرجان آبی هست به من بخورانی میخوام فضیلت از تلیه بگم تا به روزه برسم خب کسی که اینقدر مقامش بالاست اشبه و ناس خلقن به رسول الله خلق رسولم این نکل علا خلقن عظیمه این درخواست چه درخواستیه مگه نمیدونه تو خیمه ها آب نیست مگه نمیدونه که الان بچه ها دختر بچه ها خورد سالها صدای ناله ی الاتششون همه جا رو گرفته مگر نمیدونه حلیه اصخر و در اثر شدت آتش این خانما بغل میکنن این آرامششون میخواد آرام کنه نمیشه میده به اون یکی اون بغل میکنه میخواد آرام کنه نمیشه میده به اون یکی اون وقت علی اکبر با این اشبه الناس خلقن به رسول الله بیاد پیش پدر پدرو خجالت بده بگه بابا جون تشنم ام آبی داری به من بدی که این خشکی لبم از بین بره برام جنگم اینو نباید دقت کرد ما در اینجا بحثای قبلا داشتیم که کلمه آب در قرآن و در روایات اشاره به اون مقام عزمای ولایت تامه الهیه است که از کانال الهی به افرادی که میخوان سیراب بشن چشنده میشود سیراب مقام ولایت نه سیراب آب ظاهری مفصل بحث کردیم قبلا ما ان قدغا رو مگه بحث نکردی سوره انفال آیه 11 هو الذی انزل من السماء ماءا لیطهرکم ولیذهب عنکم رجز الشیطان ولیغر بهی قلوبکم و غیره مگه بحث نکردیم نکردی؟ این آب اون مقام ولایت الله است که از عالم بالا نازل می شود علی اکبر تا لحظه آخر عمر کاملا اونچه که باباش گفته انجام داده که بابا به اون شدت از او راضیه که میگه اشبه هون ناز خلقن حالا میخواد ببینه امضا شده یا نه نزدیکی مرگه میخواد از زبان ولی الله جامی از شراب وصل حق که به بندگان نائل به وصل حق میچشونن میخوام لذا که بابا جون بده یعنی اون بشارت را به من بده امضا شد در مقام طبعیت از امام به اون قرب من برسم یا نه اون وقت پیغمبر ام، امام حسین چی جواب داد الان از دست جدد رسول خدا خواهی نوشیده یعنی پیغمبر میاد امضا میکنه پیغمبر میاد میگه بله دست درد نکنه لذا وقتی برگشت این دفعه با یک شدت و هدت و شوق دیگری شروع کرد به جنگیدن حالا اولین از خانواده امام حسینه اولین از خود آل علیه چینهی هم که این دشمنان نسبت به اینها دارن تا حالا یاران و اصحاب اومدن یکی یکی اینا رو کشتن نوبت به علی اکبر رسیده تا دیدن علی اکبر رفت و برگشت این بار تصمیم گرفتن دست جمع حمله کنن حمله دست جمعی رو آغاز کردند. یک شمشیری به فرق علی اکبر فرود آمد همون گونه که فرق مولا علی رو هم شمشیر زدن اینا با علی مخالفن فرق علی اکبر شکافت شد همینجوری که روی اسب سوار بود این خون سر مبارک شروع کرد بریختن. ریختن ریخت چشمای علی اکبر رو هم خون گرفت رمق بدن کم شد خم شد روی اسب دستشو به گردن اسب انداخت که اینجوری خودش رو اسب نگه داره که اسب او را از میان این همه جمعیت بیرون ببره خون سر مبارک همینجوری میریخت اومد چشمه های رو هم خون پر کرد لذا اسب چشمش نمیدید به جای این علی اکبر رو از لشکر جدا کنه به طرف خیام ابی عبدالله بیاره چشم اسب پر از اش خون شده بود نمیدید صاف رفت تو دل دشمن علی اکبر دستش به گردن اسب سوار اسبه اسبم تو دل دشمن ای دشمنام یکی شمشیر داره یکی نیزه داره یکی خنجر داره یکی سنگ تو دست داره شنیدید که بدن علی اکبر اربن ارباش شده برای چیز چون وقتی اصل اینجوری رفت تو دل دشمن دشمن هر کی هرکی هرچی داک و علی اکبر میزد یک زمان صدای ناله علی اکبر بلند شد بابا جان من ام رفتم خدا حافظ امام حسین علیه السلام در خیمه ایستاده بود مواظب به این سحنه بود وقتی دید که حسق علی اکبر رو به دل دشمن برد دشمنام همینجوری همین جوری وار ای یکی رو مورد تیر بلای خود قرار دادن امام حسین دوان دوان خود خودشو به میدان رسان شروع کرد جنگ با این افراد تا اینا رو پراکنده کنه اینا رو که پراکنده کرد علی اکبر افتاده بود روی زمین امام حسین اینجاست که اولین مرحله اون درد ازمای حضکشی جامعه را احساس می کند که می پرماید و علا دنیا بعد کلعفا دیگه دنیا چه ارزشی داره؟ نه یعنی امام حسین به عنوان یک پدر این مسائل براش دشواره می بگه جامعه ای که نمیدونه کی کیو باید زنده نگه داره کیو باید میرانه لذا خم شد سر علی رو به دامنش گذاشت اول شروع کرد یه مداری نوازش کردن دست کشید خواست خونه از چشمای پسر پاک کنه دلش آرام نگره بوسهی خواست به پسر بزنه دل آرام نگره یه وقت میگه دیدیم حسین خم شد هیچ صورتش گذاشت روی صورت علی اکبر یه وقت دیدن طول کشید حسین صورتشو از روی صورت علی اکبر بر نمی داره زینب سلام الله علیه از خیمه ها دوید به طرف امام حسین اونی که مقاتل داره اول صدای زینب این بود وا خیا وای برادرم یعنی انگار برادرم رو بدن علی اکبر داره جان میده لذا برادرمو و دریابی زینب اومد کنار حسین حسین بلند شد رو معمولا بغل میکرد به خیمه میبرد اما اینجا یک اونقدر بدن علی اکبر. زربه دیده اربن اربا شده که امکان حرکتش برای حسین مشکله اما قسمت دوام اون چنان مصیبت حسین رو به فشار آورده که فریاد میزند جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در خیمه رسانید خدا داند که من تاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم وقتی اومدن کمک کنن علی اکبرو به بغل گرفتن علی اکبر پاش به زمین کشیده میشد یکی از عللش اینه اونقدر بدن ضربه دیده بود تکه بدن گایی به پوست آویزان بود وقتی یه گوشه بدن رو میگرفتن گوشه دیگر بدن عرکت میکرد اینجا زینب به کمک امام حسین میاد داره در کتاب مقاتل که اگر زینب به کمک حسین نیامده بود نمیدانم آیا حسین وقتی صورت شروع صورت علی اکبر گذاشته بود جان به جان آورین ترس لمیکد یا نه صلی الله علیك یا مولای